به نام خداوند جان و خرد، اشم و هو و هشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی، هیت اشایی و هشتایی اشم. با نام و یاد اهورامزده آغاز می کنیم نشست های ماهانه دانشگاه سپنتا در آغاز مرام رو برای شما عزیزان می خونم. یک باشندگی به هنگام شما در نشستها شوند بهرهگیری بیشتر از آموزهها خواهد شد دو به مهر برای آغاز سخن و پرسش کردن شماره یک را در بخش پیام روان کنید و چشم به راه پروانه گرداننده نشست بمانید 3. پرسیدن هر پرسش نباید بیش از دو دقیقه زمان برد چهار، برای سامان بخشیدن به پرسشتان و بهرهگیری هرچه بیشتر از زمان پرسش خود را از پیش آماده کنید که بدانید چه میخواهید بپرسید. پنج به مه پرسش خود را روشن بپرسید. یک جمله گویا و درباره پرسش خود توضیح ندهید. شش به مه تنها پرسش کنید و پژوهش یا مطالعات خود را در نشست بیان نکنید. هفت به مهر به پرسش باشندگان دیگر پاسخ ندهید. هشت به هیچ روی از استادان آگاهی فردی مانند کشور یا شهری که زندگی می کنند شماره تلفن و دیگر آگاهی ها را نخواهید. چنانچه آگاهی بیشتر خواستید از گرداننده درخواست کنید. نو اگر پرسشتان به شوند پایان،, پایان نشستی پاسخ ماند دانشگاه سپنتا زمینه را برای پاسخ استاد به چطان پس از فراهم خواهد بود؟ ده، از بکار بردن هر گونه باجگ نپسند و ناسزاگوی به دیگران و اندیشه ها و آینها خودداری فرمایید؟ یازده، سخنان هر یک از سخنرانان و باشندگان در نشنس ها، از سوی خود آنان است و پاسخگویی یا مسئولیت آن هم با خود آنان می باشد و فراخان آنها از سوی دانشگاه سپنتا برای آشنایی همیهنان با اندیشه ها و پژوهش های استادان گوناگون می باشد دوستان بزرگر بار جسدار امروز ما پیرامون این هست چرا نیک آینی؟ برای اینکه بتونیم از اندیشه استادی بزرگوار بهرمند بشتیم، درخواست کردیم از استاد بزرگوار استاد موبیت کامران جمشیدی که اکنون در پیشگاهشون هستیم. موبیت کامران جمشیدی، زاده ایران زمین، فرزند مهندس بهمن جمشیدی و بانو میهندوخت آزرگوش هست می مادر بزرگ ایشان بانو دولت آزر و پدر بزرگشون موبد مبدان اردشیر آذرگش هستند. از ایشان برادر بانو آزیتات همتن و موبد جمشید جمشیدی و همسر بانو هماماندگاری و پدر پارمیس و پارسیا هستند. موبد کامران جمشیدی دانش آموخته رشته مهندسی صنایع از دانشگاه این و صنعت تهران می و در ایران به کار ساخت قالب‌های پلاستیک و تولید فراورده های پلاستیکی و ساخت ماشین و ابزار می پرداختند. مبد در کشور سوئد آموزش‌های آکادمیک خودشون را در دوره‌های گوناگون مدیریت کیفیت، مدیریت تولید، و ساخت با کمک کمپیوتر C.A.M. و C.A.D. رو ادامه دادن. و در سوئد به غالب سازی و سازماندهی کیفیت و مدیریت تولید و مهندسی مشاور در زمینه تراحی خود را می کامران جمشیدی از گذاران انجامن زرتشتیان سوئد و کانون زرتشتیان به انجامن جهانی زرتشتیان می باشند. موبد بزرگوار کامران جمشیدی بیش از 20 سال پیشینه درخشان کوشش کنشمندانه در راه نگاهبانی و شکوفایی دین به هیرو دارند اکنون از موبد بزرگوار درخواست میکنم سخنرانی خودشون را پیرامون جستار نیک امروز بیان فرمایند. چرا نیک آینی ما بزرگ با چشم راه شنیدن سخنان شما با جان و دل هستیم بفرمایید بلنگو با شما پاسگذرم گذارم بانو تارا به خوشنودی اهورامزدا خداوند جان و خرد و با درود بر روان و فرهبر اشوزاتوجه اسپانتامان و همه مردان و زنان نیک و پارسای گیتی آغاز تا به امروز تا به آینده و درودی هم می فرستم به همه شما که در این نشست هستین و به ویژه شما دوستان خوب یکی نام نمی که انداختین چند است که داره کار میکنه و به خوبی هم کار میکنه به هر روی این تلاش ها همه نیاز هست جای دوری نمیره و خوشبختانه میبینیم که هممونم به گونه از این قیامتهای خوب کار شما بهره میبریم درودی به همتون میفرستم سپاس که منو فرا تا برحال یک دقائقی را هم باشیم و حال من هم آنچه که میدانم با شما در میون بگذارم و همون جور که بانوتا هم گفتند به هر روی آنچه که هر کس هم میگوید چه من چه هر کسی دیگری؟ پاسخ یا دریافتتاب و برداشت خود اون کس هست و خود اون کس هم هست که همواره باید با مسئولیت شراسی پاسخگوی آنچه که از خود میگوید باشد و همیشه هم همه جام هم همینطور است همه ما هم هر کدوم در جای خودمون، پاسخگو و گفتار و کردار خودمون هستیم. به هر روی آغاز کنم و بله وقتی زمانی که پرسیدید که خب چه نامی بذاریم برای این گفتم چرا آمریکایی حالا چراشو رو در درازای سخنان هم به گونهای چه خواهیم پرداخت. خب از اونجایی که همیشه باشندگانی هستند اکنون شما برای دانستن پس خب هموار پرسش ها هست پرسش ها برای همه هست یعنی این پرسش بودن در واقع در تمام زندگی ادامه پیدا میکنه و به من کسی هیچ وقت نمیتونه هرگز نمیتونه بگه که من دیگر همه چی را دانم. زندگی یکی از خوبیهاش این جستجوگر بوده تجربه اشکیت بودن هست که خود از هم نیازهای زندگی است هم رازهای زندگی است به نظر من خب از اونجا که برحال من برخی از شما رو میشناسم و برخی رو نمیشناسم و همیشه هم ده هر کسی کسی هست لطفاً میک... میکروفوناتون رو ببندید اگر سپاس آه... بله همیشه خب برخی مثلا پاسخها رو در خودشون دارند و همواره در سخن دیگران هم در پی اون هستند تا آنچه که در واقع باورهای خودشون رو و داشته های خودشون رو تقریب می کند اونها رو بگیرند بشنوند و اونها رو درست میدونند و گاهی هم اگر سایر رو بشنوند که با اونو هم همخانی نداره خب شاید رو اشتباه بدونن برخی هم هستن که خوشبختانه یعنی باید هر زمان هر کسی اگر میخواد به راستی بیاموزه باید همیشه اینجوری باشه با اندیشه باز بیاد و همونجوری که ازو زرت داشتم در آغاز آموزه خودش میگه که کسانی که برایش این‌در آمدید سخنان رو بهترین سخنران رو بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید این اندیشه روشن یعنی اندیشه باز یعنی پیش‌داوری ها و آنچه که من فکر می‌کنم میدانم رو برای یک دم هم کنار شده بذاریم کنار و گوش بدیم که آن سخنران چه می‌گوید بعد نتایج خودمون رو بگیریم دیگه اون در نهایت هر کسی از به از فیلترهای خودش می‌گذره و نتایج خودش رو می‌گیره پنج ب رو همش یادتون باشه چی هست ببین بشنو بیاندیش، اندیش بی و سپس برگذیم خب من شیوه خودم رو دارم برای نگرش به این داستان و اگر کسانی سخنان پیشین من و اینجا و آنجا شنیده باشند یا نوشته خوانده باشند شاید بدانند که من بیشتر تلاشم بر این است که به جرفه های داستان نگاه کنم به بن به میپردازم به ریشه میپردازم هرچند که خب اون به صلاح ساقه و شاخه و برکاش هم همیشه باهاش هست و باهاش میاد ولی مهم این است عجمان هست که اون پایه و شالوده و بن و ریشه درست باشه تا آنچه که برش ساخته میشه هم درست ساخته بشه. اگر نه این تا یا می ره دیواره کج و باز هم نمیدانم که آیا شما دوستان من یکی دو به صراط تیکه ویدئویی دارم توی یوتیوب هست جاهای گوناگون هست که این آموزه ها رو به گونه ای که خودم هم به ضبط کردم و گذاشتم و میخواستم پیگیری کنم که برادر هنوز زمان از نه آغازشم با, با, با باور و یعنی با آنچه که باور هست و باور مینامی مواس کردم چون به نظر من خیلی مهمه که این باور رو ما بشناسیم که باور چی هست و چرا و چگونه کار میکنه چون تمام سیستم ما هر, هر سامانه و هر سیستم اندیشه‌ای و باوری و بر, بر پایه یک سری باورها گذاشته شده من یه کوچولو اول به این میپردازم و بعد به خود آیین یا دین بهی یا نیکی میپردازم. اگر اجازه بدین البته میدانم که شاید همه بدانید ولی بازگوییش بد نیست. ولی حالا خیلی ساده بگم چون این مقوله این جستار یا جستار به قولش گفته شما میتونه خیلی درازا بکشه اما میخوام کوتاهش کنم. میتونم بگم باور هر چه هست که در هر زمانی ما بیگمانیم که حقیقت است و راستیاست باورها شکای گوناگونی داره معمولا باورها از کودکی در همه ما کاشته میشه حالا یا از بویه از پدر و مادر و آموزگاران نخستین حالا هرکی باشن تو زندگیمون و بعد میاد هازمان یا همبودگاه و جامعه آن گروهی که درش هستیم و, و, و خب نقش خودشون رو بازی میکنن در زندگیمون و تأثیراتشون رو می و ما آروم آروم برای خودمون یک سامانه سیستم باوری در خودمون میسازیم یه سری این باور ها چی هستن؟ همگانی اگه بگیم روزمره هستن بخواییم چند تا نمونه بگیم بگیم فلان روز خوبه، بهمان روز بده نمیدونم پول دارو وردن کار سختیه یا نه کار آسونیه یا وامزین دست و بمیشه در مورد زندگی اون چیزهایی که در مورد زندگی ما به هر دلیلی اینو قبول کردیم باور کردیم زندگی سخت زندگی آسونه زندگی شیرینه زندگی تلف زندگی جنگ و مبارزه است که زندگی آشتیست و هماهنگی. و زندگی غم و رنج یا شادی و آسودگی و مانند اینها خب این باورها وقتی میاد درون یک سامانه یا سیستم باوری که یک نمونهش برها در جوانه دین ها و مذهب خب به خاطر اون کار های اون سیستم ها شکل سختری به خودشون میگیرن و هرچی هم که اون سیستم اون دین یا مرسا رو بذاریم سختتر و به پوسته سخت داشته باشن و سختگیرتر باشند باشن و پیروانش هم همچنین خب اون باورها در اون باورمندانش هم سختتر در واقع این باورها در نهایت می بگیم برای هر کسی مسئله بقاه هست مسئله زنده ماندن هست و بذارید اینجوری میگم حالا میخوام بپرم به تش زیاد تو این موضوع نمیخوام برم اما با توجه به این که همه ما باورهایی رو داریم و بر اساس اونا حرکت میکنیم زندگی بدون باور نمیشه یعنی اگه بخوام اینجوری بگم که زندگی به خودی خود مانا و مفهومی نداره زندگی هست هر آنچه که هست هست این ما هستیم ما انسان ها مردمان که حالا خودمون رو به حال اندیشمندترین یا با اندیشه ترین جانداران میدانیم روی این تی به هر روی در مورد این چیزها میاندیشیم و به دنبال پاسخ هستیم برای اینکه به زندگیمون مانا بدیم انسان به سه گونه میتونه خودش تعریف کنه یکی به وسیله در واقع خودش رو شکل میده آزادانه و آگاهانه یه موقع است که نه ما خودمون رو شکل میدیم باورهامون رو برای که در برابر یک کس یا یک ایده یا یک گروه بیستیم که از دید ما درست نیست یعنی در یک مقاومت در برابر یک ایده دیگری یا دشمنی در برابر یک ایده دیگری ما یک ای رو میپذیریم یه موقع هست که نه از یک ایده یا یک گروه دارنده یک ایده خوشمون میاد و فقط برای اینکه خودمون رو با اونها هماهنگ کرده باشیم به او ایده ها رو میپذیریم یا دست کم وانمود میکنیم که پذیرفتیم خب این دو دو تا دومی چیزای درستی نیست چون بعد مپناه درستی گذاشته نشده بعد گذاشی درستی گذاشته نشده و روزی هم فرو پس آن درست است که آزادانه و آگاهانه برگذاشته شده باشه بعدی چی میاد که آیا ما به راستی آزادیم آزادی اندیشه یعنی چی؟ اینم بذراضا خواهد کشید فقط میخوام اینو بگم که همه ما بنا درصد آگاهی و خودآگاهیمون کم و بیش بسته و با بسته به یک زنجیره ای از کنشها و با کنشای هستیم که در زندگیمون بوده و تا به امروز رسیدیم خودشناسی که ازش گفتگو میشه خودشناسی آن است که آدم بتونه تمام آنچه که هست و باورهاش همه رو بتونه ببینه در واقع خودمون رو بشناسیم که ما که هستیم چرا چنین هستیم چرا چنین رفتارهایی داریم اندیش و گفتاری داریم و بعد اگر نمیدانیم حالا خوشمون نمیاد یا درست نمیداریم اونها رو بزنیم کنار و اونهایی که برای ما سازنده است و پیش برنده است و افزاینده است آنها را برگزینیم و بعد بنیاد اونها زندگیمونو به پیش ببریم و بسازیم خب یه کوتاهی از باورها است و همه این حال هم گفتم برای که به هر روی دین بهی، دین زرتشتی، یکی رو مز مزد... مزد... است؟ این هم یک سیستم باوری است. من چرا مض یسنی هستم من م پرست هستم یا زرتشتی هستم یا بهدین هستند ولی که در یک کانانواده ای زاشتی اینکس آن بود آنکس این بود البته از همه اینها ها آموختم آنها به جای خود، اما باید این رو بگم که به راستی من هم در بزرگسالی اگه اسمشو بذاریم دوباره خود رو شناختم و دوباره به پجروهش پرداختم و دوباره برگزیدم این بار به راستی برگزیدم برای خودم چرا خیلی ساده است برای که با یک پجروهش به اینجا رسیدم که در میان این باورها و سیستمهای باوری که حالا شکل گرفتن تا تاکنون در جهان این هم آشناتر است هم خودیتر است هم راست و درستتر است هم ساده تر است ساده برای اینکه باریش شاه سر کند برای اینکه اگر درست بشناسیمش اگر گرفتار یه سری اون شاخ و برک های تو هم تو هم که تو هر سی سمت به وجود بیاد نشیم میفهمیم که این هم خودش ساده است چون با طبیعت سر کار دارد چون با ریشه ها سر کار دارد چون با سرشت و ذات سر کار دارد و هم سازنده است دیگه گرفتار چنبرهای در واقع تظاهر و وانمودگری و دروغ و اینها نمی شود و نشویم برای که هم خود رو گم میکنیم هم همه چی گم می شود. این دلیل است که من خود دوباره برگزیدم که یک بهدین باشم یک نیکائین باشم. خب این تا اینجا آور رو، با هم, هم بینش میشویم، هم آین میشویم، هم کیشو، هم دینو، هم باور میشویم. حالا پرسش اینجاست. خب این بنیادهایی که میگیم آیا هر کدوم ما چه برداشتی از این بنیادها پیدا کردیم؟ و این بنیادها رو چه میدانیم؟ از همینجا یک پرشی میکنم به اینکه اصلا چرا این نام رو برگزیدم نیک نیک آینی برای که آن چیزی که نیک مینامیم یا خوب که حالا بعد بیشتر درش وارد میشیم، این در واقع شکیده و فشرده دین به بهی بح نیکی و دیگه هیچ پیرایه دیگه هم اگر بهش فیلن نبندیم که حالا از کجا میاد کی چی گفته این دفتر فلان گفته آن کتاب بهمان گفته این انسان این گفته آن انسان آن گفته این رو همه رو بذاریم کنار مغزش این دیگه نیک بگیم اندیشه نیک گفته ها نیک بعد بریم نیکی رو بازش کنیم ببینیم که چیست یک گایی و برای چی؟ تعریف سادهش اینه که نیکی همگانی همگان وقتی میگیم همگان یعنی که همه چیز رو شامل بشود میگم هر کدوم از اینا باز پرسش های خودشون میاره کاملا آگاه هستم چگونه میشه و این همگان چیز چگونه و و و خب اینا رو باید گام به گام به گام برای خودمون در واقع حلش کنیم و پیش بریم خب گفتم یه سری پایه ها هستند یه سری هم بعد میاد آنچه که روی این پایه ها بنیاد گذاشته میشه میشه گفت سنت ها روشیم رسم و رسوم چجوری و و و اینا دیگه خب میاد روی هست خب این تا این جمعه. اکنون من البته 26 دقیقه گذشت و تازه هنوز به اصل داستان هم نرسیدم. ولی خب میگم این چیزی نیست که با یک بار بتونیم تمومش بکنیم. هر وقت هم هر زمان هم که هم که گرامی فکر کردن که بسنده است، خب بگید که به قول معروف بپردازیم به پرسنش و پاسخ. اما برای اینکه بر به هر به یه جایی رسیده باشیم اینجوری بگم دین به چیست خب ما بیبینیم که تعریف های یا ویمندی های گناگون یا های گوناگون ازش شده بعضی ها میگن که مثلا سه بعضی ها میگن پنج بعضی ها میگن نه بعضی ها میگن من چند دونم حالا اینا همه آن چیزیست که ما نشستیم هر کدوم برای خودمون یک و دو سفر کردیم. خب، اونم برای اینکه به یک گونه ای آنچه خودمون فهمیدیم یا آنچه بتونیم به دیگران بفهمانیم این رو در واقع خب، من هم در پجروعش خودم نتیجه بندی دستگاه میتونم بگم تا یک، دو، سه، چار. خب؟ برای که ساده بشی. یک دو سه چار. این یک دو سه چی هستم؟ یک. که شاید چون یک هست پایی تقین هست و مهمتقین هست و اتواقعا برداره یا براهای دیگر برای. یک یگانی است. e aqui I aqui porque پایین که مثلا ماهسهپه پیوند و پیمان و پیمانه سه دیگر که با هم بگذاریم همبستگی همزیستی همکاری و این سه است که سه هرهای نمونه اندیشه و گفته ها رو که نیک میسازد هم بستگی و هم زیستی و هم کاری رو. که اینها رو بعداً حالا در یک مجموعه دیگری با اینا همه شک دارد. برای خودم من با نگاره بیشتر می و اینا رو به نگاره کشتن. پس سه. و سپس میاد چهار. چهار هم خیلی ما داریم. چهار بنیان هستیش رو بذاریم. آتش آب و باد و خاک، نمیترین چهارتا که همه چی رو میسازن و چهارهای زیادی داریم و از جمله چهار سازه که در در زندگی اجتماعی، در حاز زندگی حازمانی مردمی میتونن تراز و سامان به وجود بیارن. یکیش از خردنیک، مهر و پیوستگی، جنبش، و سامان و هنجار این چهار هم چهار به سرا سازه زندگی اجتماعی هستند حالا اینو فلن همینجوری خلاصه گفتم یادتون باشه یک و دو و سه و چهار این من من بهششون میذارم بنیانهای زندگی و آفرینش که بعد بقیه چیزها بر برپایه اونها ساخته میشه دوستان یک سی و سی دقیقه گذشت خب البته میدونم باز هم اینا آغاز و پایانی نداره اما میخوام یه خورده اینجا در باقی اگه دوستان اجازه بدن باز کنم و اگر پرسش هایی تا اینجا هست که خب پرسش رو در بیاندازید و در پرسش و پاسخ هم چیزهای دیگری همیشه گفتگوهای دیگری هم پیش خواهد آمد. اه ببینم گرامی آیا چنین بکنیم یا بگونه من باز ادامه بدم؟ استاد بزرگوار کسی درخواست پرسش نکرده. به گمانم شما ادامه بفرمایید، همه بهره می‌برید. سپاسگزارم. بسیار خوب، بسیار خوب. خب پس ما از یک و دو سو چار سخن گفتیم همونطوری گفتم این سیا زیادن و جالب هم هستند ولی چیزی که من میخوام برگردم به این چیزی که خیلی مهمه اون داستان یگانگی هست برای که همه چیز دیگی از تو میاد میادم بیرون خب اینجاست که اگر برگردیم به به گونه خداشناسی اگه سو بذارم آن تصویری هر کدوم از ما از یک پدیده‌ای به نام خدا داریم اون خیلی تأثیرگذاره چه زندگی خودمون چه دو زندگی اجتماعیمون و همجور که میبینیم الان نه تنها امروز حالا از گذشته تا به امروز اینها چه جهان مردمی ما رو به چه راه رانده از, از یک سو سازندگی هایی که در برخ جوامه وجود داشته و داره از یک سوز هم حال درگیری ها و جنگ ها و تضاد ها و این هایی که در دنیا وجود داره بخش بزرگیش از اون هنوز اون تصویر اولیه است از اون آن چیزی که به نام خدا و آفرینش رو اینها شناخته میشه خب بیگمان شما دوستانی که اینجا گرد آمدید خب میدانید چی میگم که اگر بخوایم یه سنجه کوتاهی بکنیم فقط برای شناخت که آن, آن خدایی که آن از جهان ما به دور است و از ما جدا است و, و فقط یه نقش حالا هم به شکلهای خودش و بعد کنترل کننده و پادفره دهنده و پاداش دهنده و, و و داره و بیشتر هم اون پادفرهش که اون مجازاتاش هست که بزرگ میشه خداایی که بازه ترسید خداایی که بازه ازش چشپسته برد و, و, و خب اونها جهان را به کدام سو کشنده و میکشه و از یک سو دیگه حال آنهایی که باز با نامواجه نام خدا میشه ازش نام برد که در واقع خدای اگه بخوایم بگیم سازنده و خدای نیکی و خدای خوبی و شادی آفرینی در واقع شناخته میشه که بخشش هم در دین آین ما در واقع به این صورت شناخته میشه خب اینها چه تأثیراتی میگذارد ساده بگم همونجا که از باورها گفتم خدا هم یک گونه باور است که ما برای خودمون میسازیم و ما برای خودمون بر که که خدایی رو بهش باور داشته باشیم. و اونها باز به خودمون در واقع برمیگردونه واکنش نشون میده و ما رو میسازه به پیش میبره خب اما این داستان یگانگی اگه از یک خدایی ما بیاییم بیرون که اگر درست باش برخورد نشه نشان داده که میتونه چقدر ویرانگر باشه اگه یگانگی رو ببینیم به این مانا و افعوم که هر آنچه که هست در واقع سرشتش یکیست راتش یکیست سرشت من و خدا یکی سرشت من و گیتی یکیست، سرشت من و طبیعت یکیست سرشت من و شما یکیست ما هم سرشتیم هم ذاتیم. به هم پیوسته هستیم مانند پود یک فرش خب اینا اندیشه های من اندیشه ها از قدیم هم وجود داشتند حالا برخی به این سو رفتن برخی به سو دیگر اما دیدگاه زرتشی به نظر من اینه که این پیوستگی رو ببینه این همبستگی رو ببینه از این روست، که ما میتونیم بگیم که خوشبختی من در خوشبختی دیگرانه اگر من این دیگری رو نتونم همزاد هم سرشت خودم ببینم هم سرنوشت خودم ببینم من چگونه میتونم دیگری رو هم خواهان خوشبختیش باشم حالا یا پیش از خودم یا در کنار خودم چگونه است که انسان ها خودخواه میشیم؟ خود رو در درجه نخست می‌بینیم البته خب این یه مقدار زیادی طبیعیه طبیعی که میگم باز با ها و باورها و آگاهی همه سر داره اما اونجاست که این همبستگی این پیوستگی نتایج خیلی سازنده‌ای به بار خواهد آورد اونجاست که وقتی ما به تعریف از جمله به تعریف نیک و بد می‌رسیم پس دیگه اینجا یه جوری دیگه می‌تونیم مثلا برداشت کنیم وقتی میگیم نیکی همگان خب نیکی برای فقط من نیست. اگر من رو حالا فکر کنم که امروز برای من خوب است اما آن, چه آن کسی که در کنار من هست، همسایه من هست یا هر کسی نه تنها انسان ها گفتم همگان یعنی یعنی جانوری یا هم درشن اون چهارتا اینا همه چی با هم پیوسته است اگر اون آسیب ببینه من آسیب میبینم این دیگه یک آرنگ یا شعار باقی نمیمونه این رو باید دید این بینش است بینش یعنی اون که بره در پشت این مثلا لایه های روین ببینه اون چیزی که ما به نام عشای یا حقیقت و راستی میشناسیم آن است که لایه های دیگه روش نیست من همشه نمونه ای که میارم برای که خودم بهتر با اون برداشت میکنم مانند یک از که یک زررت میبینم زررتی که میبینیم لایه های زیادی از برکاروش. این لایه های روی نشان نمیدن که درونش چیه اون چشم بیرون بین فقط اونا رو میبینه اون چشم راستیجو و در واقع اون چشم پیدا کن اونی که اون لایه های رو رو بزنه کنار و بره اون تو و به یک مغزی میرسه که دیگه از اون دیگه توتر نمیشه رفت اون, اون واقعیت داستان هست خب. این هم یک مقداری میشه با اون نگاه کرد به این دیده نگاه کرد که برای اینکه بدونید که واقعیت یک چیز چیست، زود درگیر و از سیر لایه های رویی نشید زود داوری نکنیم. دانستن واقعیت ریزن گاهی وقتا خیلی پیچیده میشه برای که این لایه‌ها ها زیادن این لایه‌هایی که هر کدوم از ما به یک گونهی روش میذاریم برای همینه که حالا در, در جاهای گوناگون نگاه کنید وقتی که میان گفتگو میکنن بحث میکنن حالا اجتماعی سیاسی یا غیر و بهمان میبینیم که چقدر خیلی ها همه گیجن بابا پس این داستان واقعیتش کجاست برای که اینقدر هر کدوم از دیدگاه منافع خودمون اینقدر لایه ها روش می‌ذاریم که دیگه گم میشه اون کار بهدین و از دید من اینه که بتونه با شکیبایی و با یک هدف نیک که در پشت این لایه‌های دروغین یا رویی بتونه با دست یابی به واقعیت چیزها تا اونجا که میشه هم خودش بفهمه راه درست چیه درست چیه تا بتونه انتخابای درست بکنه، های درست بکنه زندگیش و هم اگر با اجتماعش، با حازمانش به یک نتائج همگون میخوان برسن یا همانگی کنن با توجه به راستی ها و واقعیت ها باشن. طالع گرامی در آغاز سخنان عشم و رو خوندن. که من اینجا فقط یه دیاده و یه کچک بکنم میدانم که خیلی ها این رو خب عشم وهو میگن این وحو در جاهای دیگه وح و وحیشتا و اینا زیاد داریم ولی این شکل واژگانی که به خودش میگیده وهو هست عشم وحو وهو هستی ووشتا هستی ووشتا احمایی هید اشایی و هیشتای اشم. خب اینجا سخن هستی که اشا هست و یکی عشاوه هیچ و این پرسش هم تو گفتگوها زیاد پیش میاد که خب عشاها چیست؟ حالا بهترین عشاهایی یعنی چی؟ این رو هم خب هر کسی از دیدگاه خودش یک تعریفی روش میذاره. یکی از تعریفهایی که من شخصا میپسندم این هستش که حالا اگه اشار ما به یک راه درست بدانیم برای رسیدن به این نتیجه درست و اگر برای رسیدن به یک نتیجه، یک هدف، یک آرمان، یک آمال، حالت چیز بداریم برای رسیدن به اینجا اگر راه های باشه شاید ما با همواره یکی از این راهها از راه دیگر بهتر میتواند باشد و به این باز به این مالا نیست که بقیه بد هستند بلکه بقیه, بقیه هم خوب هستند اینجا نسبی میشه خب بنابراین همیشه یه اشع وحشی وجود دار حالا اگه از این دیدگاه با با این تعارف نگاهش میکنین بنابراین خیلی راه هست که هر کدوم از ما بریم در زندگی اون میتونه راه خوبی باشه و راه های بهتری هم میتونه در کنارش وجود داشته باشه اونجاست که دیگه خرد میاد اونجاست که آزادی اندیشه و خرد که بتونه همواره آنقدر باز باشه تا آن راه های تازه هم که پیش راش میاد ببینه پیدا کنه در کنار راه های دیگر بذاره باز هموار راهش بهتر کنه آزمون و ختم با آزمودن زندگی رو میشه فهمید گاهی وقت وقتا هم باید به بیراه رفت تا فهمید که بیراهه است و بازگشت دوباره به اون راه راست و درست از کمی هم من در این مورد گفتگو می کنم و بعد پایان میدم از چهار بستلا چهار فاکتور و چهار عامل یا چهار سازه گفتم در بسلاه زندگیمون یا در باورها ببینید یک اجتماع یک گروهی از مردم که با هم زندگی میکنند در چارچوب این باورهای ما این چهار عامل اگه در یک جامعه برقرار باشه اون جامعه و اون انسان ها و اون مردم هم در خودشون به یک گانگی و هماهنگی آهنگی می رسند و هم جامعه رو بیتونم به پیش باید نخست همون گفتم اگر بگیم یکتایی یا یگانگی یک یا پیوند و این پیوند از راه چیزی که از قدیم بهش گفتن مهر, مهر آن امدید به هم پیوند زننده این یگانگی است دو گفتیم دوگانگی چی بود دو دگرگونی یا دوگانگی که جنبش به وجود میاره این دوگانگی آفرینشی حالا اخلاقی به جای خود بذاریم کنار که اونم به گونه دیگری جنبش به وجود میاره زندگی یعنی جنبش یعنی جنبیدن هر که که زنده است می جنبد و این جنبش دگرگونی می آورد. دگرگونی بنیاد جهان است. در درون اون یگانگی. پس یک دگرگونی که بر پایه چی است بر پایه هنجار و سامان و قانونمندی است. سامان نیک. امونجا که اشا می نامیم. و درون این اشا خیرت هست. دانش است و منش نیک است یا وهو من پس وهو من و اشاو در واقع سپنتامینو و یا همون یگانگی پس ی یک و دو چار مهر و جنبش و هنجار و خرد جامعه که این چهارتار همه رو با هم داشته باشه یا انسانی که از این چهار فروزه به خوبی برخوردار باشه اون انسان و اون جامعه با خود یگانه می شود ها و چند های پا پارگی های درونمون به کنار و درون اون یگانگی انسان بشه نیک دارد دگر گونی هاش که همیشگی هست دگر گونی ها رو می بیند و هم هماهنگ می شود و هم خودش دگرگونی ها را به وجود می آبرد. در چهارچوب سامان و قانون هنجار که بر پایه دانش، دانش نیک و منش نیک و خرد استوار هست بر این چار پایه که خود رو و جامعه رو بنیاد بذاریم نتایج ازش میگیریم که اون نتایجش بار دیگر گفتگو میکنیم اگر بخواید همون آرامش هست و پیشرفت و پیشرفت همیشگی به سوی نیکی همگانی این در واقع حالا به کوتاهی پایه های جهانبینی و فلسفه آینه بهی نیکایی نیست و برای پایان دادن به این بحث باز بعد می گردم به این که نیکی نیکی رو بذاریم به مرکز داستان اون به نخی که دورش گرد میاییم. به دور از اینکه چه کسی نخوست گفت یا چه کسی سپس گفت که نیکی نیکی است. هر کس گفت نیکی نیکی هست، نیکی همگانی و بر اون چارچوب حرکت کرد با من همایین است. و اونجاست که ما در همازور می که همه در واقع نیک آینان جهان یا همه نیک انسان ها ما با همه همازور میتونیم باشیم و همه برای سازنگی خود جهان کام پیش بگذاریم ببینجه در این روزها هر روز و در این روزها که ما هستیم و جهان آشفتهی داریم که های انسان از خودش میپرسه به خودش میگه که چی حالا این همه انسان دارن به سر و مخص همدیگه به معروف میزنند و ما چه میتونیم بکنیم نه چنین نیست باید بدانیم که آفریننده ما هستیم هر کدوم از ما هرانچه که بخواهیم میتوانیم بی آفرینیم هستی این هستی نیست که در واقع آفرینشو می آفرینه این ما هستیم که آفرینشو می آفرینیم بنابراین همیشه میشه بود همیشه میشه تأثیر بذاشت و به زمانهایی که به دیده میاد که چیزی و چیزی بند نیست به بندی و بندی بند نیست و جهان به بیراهی دارد می روید. اتفاقا آن روز است که نیکی باید به میان بیاید آن روز است که باید و نیکی بیشتر پایک شد و آن را به شیوهای گونه و گونه به پیش رو در داردم و آنچه که به نظرم می اومد در این کتاها بهتون گفتم امیدوارم که خودتون با, گفتم با اندیشه باز بشنوید و بینگرید و هم که اگر گمان می کنید چیزی از برای آموختن آموخده باشه خب دوستان اگر پرسشی هست ما در خدمتیم من یعنی و خیلی هم خب برحال می بینم که شمار بیشتری هم حال پیوستید به این گفتگوها برحال من بگوشم خب در این بخش چت هم میبینم که یک نفر برحال یک زده است جراب سپنون بله. بله. سپن... سپنتا مینوی گرانی پرسش دارن خواهیش بفرمایید بفرمایی دفعه. با درود به شما نازنین بسیار آموختیم زیبا بود خیلی سپرانتون فورا هستش، من یه پرسشی دارم در مورد اینکه آیین زرتشتی گفتید که به نام آین بهیه من خودم در مورد آیین مهری اجورش میکنم. خیلی سخنان نزدیکه به ویژه این قسمت آخری که فرمودین خیلی نزدیکی میخوام ببینم آیا آیین مهری هم میشه گفت آین بهی رفتی به آین زرت و یا نزدیک به هم هستن یا خیلی بسیار سباز گذارم خواهش میکنم هم میشود گفت آری هم میشود گفت کمتر آری به این معنا که ما چه برداشتی از گذشته و از تاریخ و از تاریخچه این سیستم های داشته باشیم ببینید آنچه که ما به نام مهری یا مهرگرایی یا مهرپرستی در ایران در ایران گذاشته میدانیم یا برحال گمان میکنیم که میدانیم از آنچه چه به دستمون رسیده و سپس ادامه آن در خارج از ایران که برحال با های امیتراییزم و اینا خب نامور هست و آن شکل هایی که به خودش گرفت در خارج از ایران و اینا که خب داستانش دراز هست و خودتونم هم خب در این زمین داریم پرجوش میکنیم بگیم آن بیشتر از من میدانید آن برداشتی که من دارم ببینید اینجوری بگم که آنچه که من نتایجی که امروز برش هستم و بر اونها خودم رو در واقع به پیش میبرم میسازم در کناری که برای من همه اینا در دین بهی زرتوشتی وجود داره بخشش هم مال پیش و پس از زرتوشت هم هست چون اینا بخش گوناگونی از فرهنگ،, فرهنگ خودمون هستن ببینی مهر برای نمونه خب این مهر خب شاید از همه این واجه ها مفهوم های حالا ازش رو بذاریم از همه کهانتر هست و از همه مندگارتر بوده و هست مهر، آناهیتا همه اینها نقشهای خودشون رو داشتند و دارند در دین بهی هم حالا آغازش چگونه بود خب ما با عشو زرتوش میدونیم و خب بیگمان گاته های عشو زرتوش بن هست و ریشه است و پایه هستند و من بهش میگم یه می سکوی پرتاب خیلی مطمئنی هستند برای که انسان رو اول به رهایی میرساند به آزادی میرساند باید برساند و بعد از اون آدم میتونه باخرد خودش به پیش بره مح یا اگه از شداریم عشق, عشق،, عشق، مح البته از عشق عشق انسانی یا عشق برای یکی از نمود های اما این مر یعنی همون در واقع همون پیوند، همون پیوند همه هستی با هم. در درون دین بهی هم خب مر جاگاه کلش رو باز بیمارا باز بخشش خارج از دین بهی هست که در درون دین زرتشتی هم آمده و شکل خودشو گرفته. ولی من به اونا نمیپردازم بهخوااسته اینکه اوته میگم کار پژوهشی فرق داره. خب منم خودم شیفته پجروه هستم و شیفته کار همه شماها. چون منم از پژوهش شماها بهره میگیرم اما من برای خودم ترجیح میدم که برتر میدانم که بر پایههام بمونم و مهرو خیلی ساده نگاش میکنم. آن چیزی که من رو شما رو به هم می و آن چیزی که مهر شما رو در دل من میذاره یا مهر من رو در دل شما امیدوارم بذاره و بر پایه نیکی هستش آن چیزیست که من شما رو به هم پیوند میده و این حالا ما به خدای مهر ایزد مهر و میتراب و آن چیزی که دو پیرامون این ایزد, ایزد بانها هست یا ایزد هست آن داستان بسیار هم شگفت هست, هست هم شگفت ساعت بزرگ است. خب الان امیدوارم یک روز شما سخن بگید در این زمینه و من بیام از دار شما پهده ببرم من فران این مهر آن مهری می‌بینم که من شما رو شما ها رو با هم بسیار سپاس گزارم بخواهش میکنم سپاس از شما که بان ویشتاس به آریا مهر پرسشتون رو بفهمید گرامید بفهم درود بر شما و همگی دوستان من یه پرسش داشتم درباره با چگونه برخورد کردن با انسان‌های به ظاهر زرتشتی که حالا اون نیکی همگانی که شما فرمودید رو ندارن انسان‌هایی که به ظاهر زرتشتی هستند ولی با رفتارهای ناشایست مانند دروغگویی درویی، دو همزنی و سایر رفتارهای مخالف با آیین بهی با این رفتارها چهره آین زرتشتی رو خدشهدار کردن و افرادی رو که به سمت این آینیان رو گریزان میکنن من میخواستم بدونم دیدگاه شما و دیدگاه آینه بهی درباره برخورد با این افراد چی هست یک ایران سپاس از زمان گرانقدری که در اختیار ما قرار دادید سپاس گزارم خواهش میکنم حالا جونم میدونم این یکی از ورحال پچیدگی های داستان هست و همیشه هم بوده خب این دیگه زمان نبودیم با به اصلا خود مفهوم دروغ مقدار بپردازیم که بدی چیست و دروغ خدای اینجوری بگم یکی از،, یکی از چیزا این هستش که بدون هیچ گونه و یا اینکه من که هستم شما که هستید یکی از نمودهای بدی و دروغ برای هر کنوم از ما آن چیزی که کسی میگوید یا میانجامد یا منظوری که انجام میده یا ان بسرا می کند <تصفح> کاری که انجام میده و آن چیز با اندیشه های من و خواست من هماهنگ نیست. خب وقت ممکن است من آن گفت رو یا آن کرده رو بد و دروغ بدارم این این چیز کلی است آگاه باشیم که وقتی ما میاییم میگیم که برای نمونه کسی آمده است و دروغی گفته است این, این دروغ رو باید ببینیم که چگونه چی بوده است حالا ما اجل در مصد... ما در... نه در داوری و ذوات هستیم اینجا اما خب طور کلی من میگم چنین کنید برخورد آری برخورد روشنگرانه ایرادی ندارد ببینید این مسائل مسائل کنش و کنش های انسانی رفتارهای متقابل انسانی این خودش دانش است که اگر حالا زمان اجازه بدهد و بخواهی یک بار می فقط در مورد اینا گفته چگونه برخورد بکنیم با دروغ که در واقع نتیجهش یک نتیجه بخش باشند دیگه سمر بخش اینا باید دانش هم روانشناسی هم مردمشناسی و جامعه شناسی رو درش به کار برد اما دیگه ساله ترین این است که خودت رو از دروغ فاصله بگید حالا اگر کسی به قول شما اگر شما حالا یه گروهید برای نمونه حالا دارید یا یک گروه کوچکی رو دارید یا فکر کنید که همه جامعه حالا در اینجا جامعه بهدینان هزارتش رو داریم یزار می‌بینیم راستش رو بخواید شما هم همینجور حتما زیاد دیدید من هم در این دست کم دارین 25 3 سال گذشته به شیوه های گوناگون هممون برخورد داشتیم خب اه... کسانی زیادی بودند آمدند خوشبختانه که فریشه های خودشون بازگشتند حالا من فقط مظورم بازگشتگان یا نزرتشتی نیست همه چه خود زرتشتی زاده با. چه دیگر هم پاره. انسان ها دارم به تو کلی میگن کم نشنیدم نیدم عزیزم که این بیاد در مورد اون بگه که بابا این هم که زرتشتی نیست این هم که دروغ میگه این هم که این اینگونه است آنگونه است این چرا آمده پوشت شده یا شده؟ از سوی دیگه باز آن کس در برابر این کس همین رو میگوید. این هم میگوید ایشون دروغ میگوید ایشون فلان. میگم آدم تا دانه دانه اگر بخواد اگر بخواد در جای گاید آوری بشینه باید بسیار آگاهتر باشه یعنی اطلاعات آگاهی داشته باشه تا بتونه داوری کنه ولی میخوام اینو فقط گفتم به این معنا که حتما آنچه چیزی که من فکر میکنم که امروز دروغ و راسته فورا فوری نکنم یه خود برم توتر اما هر زمان که برای من برای خودم استوار شد ثابت شد که کس دروغ میگوید و یا کس ویرانگری میخواهد بکنه جدایی فاصله و تا جایی که فکت است واقعیت ها هست و استوار شدنی است خب نشان بدهم در برابر دروغ بهطور کلی نباید تاپ است گذاشت اما زمانی که به راستی بدانیم که چنین هست به همه جوانب به کار روی های کار گناه رو نگاه کرده باشیم اون لایهای های رویه روی که گفتم زده باشیم کنار اما سکوت در برابر ویرانگر انگری است اگر هم گفته میشهها بر مبنای فاکت و واقعیت باشه و با هم فکری و همدیشی گروهی باید این کارو کرد امیدوارم تونسته باشم پاسخ خودم را داشته باشم کمی ژعرف بشید به داستان اول همه جوانم به قذیت بگردید با هم گروه هاتون کنید و با همخرد گروهی بهترین را اوبل اگر هم مضور زندگی شخصی خودتون که هر کسی باز پاسترکوی زندگی شخصی خودتونه کلا وارد بازی ها و تظاهر تظاهر کردن ها نموانمود کردی گریه ها نشید یعنی هر جا که پای دروغ درمیان باشه عزیزم پاش شده زندگیتون یه جایی خراب میشه اثرشون سرشو میبینید برگردید به راه خودتون راستی برید آن دروغ رو هم به خود با امیدواریم یک روز به راه درست برکر سپاس کذارم. پرسش آمد. بعدی؟ سپاس کذارم از شما موبد گرامی پرسش بعدی رو کدوان مهداد آرزی میخوام بپرسن. کدوان مهداد بفرمایید بادرو در شما موبد گرامی و با سپاس از گفتارتون من پرسشم در مورد پایه بود پایی نیکی که ما سخن گفتین اگر امکانش هست یک مقدار بیشتر باز بخش سخنت بریده شد پایه نیکی نه در مورد نیکی رو یعنی بیشتر سخن دیگیم بله خب آه... ببینید بذاره اندوری آواز بکنیم اه... یک واجه دیگری که میشه در کنار نیک گذاشت یا جای کرد که من واژه بهتری تالا برش پیدا نکردم و اون سازنده بودن است سازندگی چیست سازندگی با تعریف های انسانی اینم به باشه هر کدوم از اینها رو که ما میخوایم دون تعریف بکنیم باید همه را در نظر بگیریم این همه بودن باز به با اون همه اون به صدا و یه, یه میخوام برگردم نخست ما باید به با آن گامه ای از دستش بذارم بزرگ شدن. برسیم هر کدوممون. یعنی اینقدر بزرگ بشیم تا همه چیز رو درونمون داشته باشیم و بتونیم تا اونجا که میشه هر چیز رو در سر جای درست خودش قرار بدیم. وقتی که اون پرکتریو داریم، وقتی که اون دورنما و اون همه چیز رو با خودمون داریم، اون وقت وقتی میخوایم یک دونه از دینا رو بررسی کنیم که این کجا باید باشه که سر جایی درست خودش باشه که اشا برقرار بشه، اون زمان اون رو در نسبیت با همه چیزها نگاه میکن خب، سازندگی آن است که هم من رو بسازد، من چی هستم؟ یک آفریدهی هستم، یک هستیداری هستم، یک تن دارم، جان دارم و روان دارم. حالا اینا بار به اون بخش انسانی که این روان رو میشه گفت آگاهی و چیزهای دیگه میاد توش ولی همین ها نگاه کنیم پس وقتی میگم من ساخته بشم یعنی چی؟ یعنی اینکه که تندرست باشم که زندگی در آرارو میشه داشته بعد این از من. بریم من که نیستم در این هرگان هستم دیگه خب خب سازنده برای دیگران چگونه میتونه باشه اونو باید بگیه دیفاکت رو پیدا کنی کار ساده ای نیست ها بگم خیلی به خاطر همینه وقتی صحبت نیکی بدی میاد یا باید کتاب ها نوشته بشه و دستورها داده بشه و فرمان ها داده بشه که اگه میخوای انسان خوبی باشی یا دیندار خوبی باشی اینجوری بخور اینجوری بنوش اینجوری بپوش و و خب ما اگر نداریم خب برای همون از اون ایراد میگیرن گاهی از اونور که نگاه میکنن که اه شما که یک دستور فرمانی ندارید پس به درد نمیخورید برای که انسان که خودش نمیتونه بفهم خوب و چیه ما باید بهش بگیم خوب و چیه خب اون اون بچه هست اون ماره کسایی که باید بهش بگی چه بکن چه نکن مشکل ما دو دنیا با همون انسان خب. اما این برای هم ساده خب او آزادی الان حالا برو خودت راه خودت پیدا کن اما آدم گم میشه در وقتا ها من پس خوب باشم چیکار کنم که خوب باشه این کارو میکنم اون بدش میدار اون کارو میبینم س... میکنم سرم بخوره می به اونجا خب از روی همه همین ها شکل میگیره بارورتر میشه ما دگون خرد خیرات داریم خرد بسرها آسن خرد داریم گوش و سرود خرد داریم یعنی یه خردی هستش که از درون میاد که اونم نتیجه تجربیات ما در زندگانیست که به تدریج درمون جمع شده و یه خردی هم که بسرها در از بیرون میاد حالا باز وارد اینا نمیشم که خود پیچی کنیم داستانو پس سازنده باشه یک برای من بایی در کنار من دیگه رو هم خراب نکنه زندگی ای هم خراب نکنه اگه تن من رو می سازه بتونه تن دیگری رو هم بسازه اگه روار من رو می سازه بتونه روار رو وا هم بسازه جامعه‌مون رو هم بسازه و این جامعه فقط جامعه خانواده من و خیش من و کوه برزن من و کوچه من نیست و تنها شهر من نیست و تنها کشور من نیست که همه جهان است و باز برمی‌گرده به اون کل پس باز میگم همه جهان باز من توی انسان روش نیستیم اون درختهم هست اون آبم هست اون گیاه هم هست پاسخخ ساده ای ندارم به بدم که یک این کارو بکن دو اون کارو بکن اون راهشا بعد خودش پیدا بکنه. آزمون و خطاست آگاهیم ببریم بالاتر، بی دانشمون بیافزایم. افزاییم هرچی دانشمون افزونتر بشه بینشمون هم. سیغل خورده تر بشه بینش چیه؟ یعنی فهم همین چیزهایی که گفتم در واقع همون یگانگی و این مسئله که دارم میدونم اونو بهش بگیم بینش با توجه و دریافت اینا یه گام برمیدارم براساس اساس بهترین داوری که دارم در هر زمان نتیجه رو میبینم اگه نتیجه سازنده بود و ویرانگر نبود گام بعدی رو برمیدارم اگه جای دیدم کار خراب شد، پس یه جایی کار میره دیگه بعد بگردم لنگی کار پیدا کنم در کنم اما داستان اینه که دوستان یک چیز به ما میده این دین بهی دیرنیکی هدف مندی درست موضوع مهم ممونه در تمام زندگی هم همینه چه تو کارهای روزمره که داریم انجام میدیم چه تو پروژه هایی که داریم و بعد تو زندگی خانوادگیمون توی دوستی هامون با به و. هدف هدف نیک و سازنده باید باشه. اون فراموش نشه. اون اونایی که گفتم فراموش نشه. اینا باید همواره همه این مجموعه رو ما داشته باشیم درونمون تا از درون اونها اون خرده بیاد برگزینه و گام بعدی رو در واقع برامون انتخاب کنه که به پیش بریم. نیکی رو من اینجوری میبینم. نیکی یک و دو چار نداره. نیکی فرمان و دستور نداره. نیکیان چیزی که سازنده باشد رو همین واجه سازندگی بیندیشیم و اون چیزایی که بهتون گفتم اون چهار عامله سامان و قانونمندی قانونمندی بر مبنای خوبی و مبنای چیزی که آرامش بیاره خب چون ما حالا به اون نتیجه زیاد نپرداختم خب اینجا الان بگم یکی از اون فاکتور که یکی از اون سازه هایی که من نتیجه خوبی میدانم اسمشو میذاریم آرامش آرامش آرامش خیال حاسودگی خیال چه برای من چه برای جاممم چه برای جامم اگر هر زمان که اون آرامش برقرار شد پس به کار درستی انجام دادیم این هم یکی از اون چیزه در واقع اون نتاجی گرفته میشه آرامش spent armating و بعد میاز حروتها در مرتاد. در اون آرامشی که من و جهان بتونه به پیش بره، همواره بهتر بشه، فراتر بره، والاتر بره تا به همه بودن و به رسایی و تکامل برسه. آن چیزی که به اون سمت میره ما بهش میگیم نیکیم. سپاسگذارم؟ پرسه بعدی. میدونم که خسته شدید ولی خب دوستان دارن. پرسش بعدی رو کدوان کیان گرامی بفرمایید کدوان درود من درباره ایزدان چجوری و چگونه ایزدان وارد دین زرتشتی شدن و کار آنها و است لو چت در این اومد. سپاس تشکر. واش می‌کنم. ببینید جوری بگم. شاید در آغاز گفتم که بعضی وقتا برخمون میایم جای گفتگو و البته چه طبیعی است. برای خودمون یک برداشتهایی داریم و دنبال در پی شنیدن آن چیزهایی هستیم که برداشت های ما رو برای خودمون رستوارتر کنه من, هم من هم اینجوری هستم و شاید بیشتر بودم میخوام پیوند بزنم با پرسش شما یکی از چیزایی که مورد گفتگو گای وقت مورد اختراف بوده و شاید باشه اینه که خب دین بهی پایهاش چیه و مسئله اورا میاد مسئله گاته ها میاد مسئله عوسته میاد مسئله ایزدان میاد جایگاه اینا تعریف اینا یک سو داریم سویی که مثلا بدونه به نظر من بدون شناخت جرفتر از داستان میگیم نه این رسمت ها همه بده و اینا رو بزاریم کنار و فقط اون, اون، مثلا این درسته اون بخش اونور اونور می همه اینا با همه نمیدونم اینجوری اینجوری آن چیزی که من دریافتم از این میان <تصفيق> میان است خب. یکی از تعریف های زیبا و به نظر من همه, چی، همه چیزگوی ش تععادادله ترازه همسنگیست میانه رویست نه این معنا که معنا که میانه باشم یعنی که خودم بگم نه مثلا این درست نیست اینم هم درست نیست پس اون که من میگم درست نه آن, آن چیزی که رای که من رفتم عزیزم این بودش که آغاز کردم گفتم سکوی پرتاب خیلی خوبی داریم ما اگه درست در اشترا خب آن چیزی که پیش بود آن چیزی که اینجا بود و آن چیزی که پس بود. همه اینا رو نگاه کردم و می‌کنم. ارمان‌های های خوبش رو بذارم بغل دیگه. و بعد پیوندا رو پیدا می کنم. اونجاست که همه چی برای من گویا میشه و زیبا میشه خب. من هم یک روز وقتی می شستم به خاطر که یه چیزهایی رو اول اومد و خام بودم خب به نظر خودم نگاه می کردمم آ پس اینی زدان پس اینا بدن اینا نمیدونم. اومدن دین خراب کردن، فقط به اهورامزدا مثلا نگاه کنیم و و خب اوکی بعد پیشتر اومدم یه خود پیشتر رفتم توشون. خب پاره ایزدان چیان مگه؟ اگر ما با اون قضاوت های امروزی نگاه نکنیم به خاطر یک اذیان دیگه هم ببیشه اونقدر های تو کلی ما کردن که نه یک خدایی و تک خدایی و اینا همه نمیدونم فلانن بهمانن پس شما چند خدایی هستید اصلا داستان خدا رو بذاریم کنار دیگه اینا اینا رو بسرا صد راهمون نکنیم که نه ما یک خدایی هستیم پس نه یکی میاد میگه نه ما دو خدایی هستیم, میگه نه, دو خدایی هستیم. میگه نه ما دو خدایی نیستیم نمیدونم فلان هستیم یکی میگه ما اصلا چند خدایی هستیم آقا وای کن <تصفح> ببینید هم خدا رو با آفریدیم هم ایزدان رو ما آفریدیم ببینیم کدومش به دردمون میخوره. خب. اگر ما ایزد رو به عنوان سزاوار ستایش آن چیزی که مفهومش هست. ل... کلم واژگانیش است، هست. ها؟ چه چیز از سزاوار و ستایش؟ ستایش چیست و چه چیز رو ما ستایش میکنیم که سزاوارش باشه؟ برای نمونه همجای گفتم مهر یکی از والا این ایزد است. خب مهر رو ما چه برداشتی ازش داریم و یا حالا بقیهشون هرکدوم جاگاه خودشون دارن ما دستکم سی تا ای زد حالا و والا خود خب؟ اگر اینها رو ما نگاه بکنیم به عنوان یه سری موجودات عجیب غریبی که در آسمان نشستند و نمیدونم همون دیدگاه حالا نام نمیخوام روش بذارم همون دیدگاه ابتدایی که انسان از خدایان داشت اگه اونجوری بخوایم امروز هم نگاهش کنیم که اصلا اصلا یه دیگه خب؟ ولی نه اینا رو مفهومش تو زندگی‌مون نگاه کنیم مه چه مفهومی داره؟ آنهاییتا چه مفهومی داره؟ ما کنوم از ایزدان دیگر تو زندگی انسانی و احساسی و رفتاری و منشی انسان چگونه میتونن بازی بکنن خب؟ اونجوری نگاهش بکنیم همه ایزدان خوش جایگاه جایگاه خودشون داره. همین امروز ما گاهنماون رو نگاه کنم گاهنماون بر برمبروه گاهنامه پوهنه خب استیارم زیبا هر روز هم نامی داره خب هم نام حالا گفته ای امشاست توش هست که همون باشند و بعد ایزدان خب من اینجوری نگاش میکنم که چه نگاه زیبایی داشتند پدران ما که چگونه نگاه میکردن به این و در واقع اینجوری بودش که اگه بخوام بگم هر ایزدی هر حالا از خدا از این یعنی این ایزد دگرگون می میشد به ایزد بعدی این چرخه از یک شکل به شکل دیگه شدن و دوباره بازگشتن و این چرخه ادامه دادن و این هم همه در واقع نمودهای گوناگون یک چیز بود خب و فقط نشان میداد اون چهره های گوناگون زیبای هستی رو و از هر ایزدی ایزد بعدی از هر روزی روز بعدی زایده میشد و هر روز جشن این جشن خودش یکی از چیزهای بزرگی جشن فقط همین نیست که بشنی جشن بگیری و فریدان اینجا خودش فرصفی بزرگی داره با اینها گره میشونی فرصفی کردی دین آینه زیبا اونای زن و اینها رو گفتم که بگم امروز برای من ایزدانم زیبا هستن جاگاه خودش لرا واشونا پاتینه میکنم با هم دیگه هر کدوم جای خودشون دارن و من در اون پیوستگی و همبستگی و یگانگی نگاهشون میکنم و همه اینهام میتونه به زندگیمون معنا بده به شرطی که بمفهوم نشه تواتون و مفعوم واسه برای زندگی خودمون دوستم من نمیدونم که میکروفون کودم. هر نمیدونم پاسخ خود دادم اه... کیان جان یا نه. یا این که میخواستی پاسخو خودتو بشنوی. <تصفح> استفاده از شما موبر پاسخ پاسخم رو به درستی نگرفتم ولی خب برحال شما اون چیزی که من خودم باید با خرقبندی حال اون چیزهای ای که شما گفتین رو در یک میردار فکس حالا من من ازت میپرسم که شاید برای دیگران, برای دیگران هم خب برای شاید جالب باشه شما مگه در مورد ایزد وقتی از من میپرسی چه دیگای داری کوتاه بگو برای چی پرسیدی برای چی پرسیدی من برای اینکه برای من پرسش بوده که این چه جوری وارد آین زرتوش شود چه آره خب فهمیدم یعنی گرفتم که شما راست میگی گفتی چگونه و من چگونهش رو نمیتونم پاسخ بدم چون برای من تاریخ یعنی گذشته و گفتگوی از گذشته به مانند یک حقیقت یا یک واقعیتی که 100 درصد من میدانم و جزی نیست هیچ کس نمیتونه اونجوری بگه آن چیزی که از مجموع برداشت ها به نظر میاد که به هر روی باور ایزدی در درون مردم ما وجود داشته از گذشته حالا اسمشو بذاریم باور ایزدی و اینها توی مردم بودند خب حالا از رو به عنوان یک انسان اومد و بسیار دیگرگونی ها به وجود یک انقلابی وجود به وجود ودنگی بخوام بگم اما خب این باورها نرفتن جایی و اومدن آروم داروم دوباره به شکل های گناگونی خودش رو جایگذین کردن در آین نو و حالا باز بستگی داره چگونه بهشون نگاه کنیم که اینها آیا خوب بودن که موندن اگر, اگر نبودن چی میشد نمیدونم ولی مهمم لیست نیست برای امروز برای که من میشنم از تو اینا خوباشو در میارم و خوباشو به هم پیوند میدم و از, از, از نیکیهاشون ببریم چرا خودمون رو اصلا درگیر این فکر رو آسان نکنیم که حالا مثلا خیلی از این صحبت ها میشه دیگه آقا این عوستا مثلا فلانه یا فقط گات یا این زدان بذاریم کنار خب اوستا آقا جان اوستا یک،, یک کتاب که نیست دیگه خب دیگه بایدارم همه شما اینو بدونید اوستا روی هم و مجموعه یک سه چیزاست که از گذشته ما به جا مونده امروز این هم گذشتن یا از گذشتهان بوده دیگه. یه زمان بخش داشته بخش های دانشی و دانش روز و نمیدونم از و پزشکی و سیاست و شهرهای کشورهای رو همه توش بوده تا بخش های دینی و آینی خب اینها بر اثر کتاب سوزان ها و نمیدونم از بین رفتن ها و فرنگ و خب دیگه میدانه میگی داره خب تا دا خب هی رفته آمده باز دوباره از تو های مردم در اومده اومده نوشته و و و بعد دیگه تا رسید به زمان ما آن چیزی که مونده امروز به دست ما مجبور میگیم میگی مابستا. خب بیگمان اینها فکر یه نفر که نیست، بخش شش مال زرتشت خوشبختانه گاته ها باقی مونده به شک گوناگون. بخش های پیرامونش فرنگ این یعنی مردم بوده حالا خوب و بد از نظر ما امروز وقتی نگاه کنیم در کنار اونه اولا بهش عرج بذاریم یکی از مشکلات ما اینه که، گذشتهمون رو همهش مثل امروز خوب رو میکنیم آنچه که به نظر ما امروز خوب نمیاد آی ناسزا میگیم نمیدونم فلان میکنیم فهمان میکنیم بابا خوب اونم بوده تا که نمیدونیم امروز اون مثلا ردش کنی یا بگی نبوده بوده در کلی میگه انسان خیلط مدر امروز اگه خیلط روز بفر ای بابا اونم دلیل داشته بس خودش اونم تو زمان خودش اینجوری میاندیشیده و زندگی خودش اونجوری میساخته من امروز زندگی خودمو چجوری بسازم پس بیام اون بخشای خوب و سازنده بذارم کنار هندگه و آن چیزی که امروز میخوام بسازم بسازم همجرگی گفتم چگونه اومده به وسیله افکار مردمی دوباره برگشتون، نمیتونیم بگیم این مغان اونجوری بودن، این موبدان بهمان بودن یا اون نبودن، ساساونیان فلان بودن، این این کلیشه کردنها کار ما رو زار کرده برای که هی میاییم، هی کلیشه میسازیم واسه خودمون رو گرفتار یه سری بسته بندی کلیشه میشیم بعد گم میکنیم، دروار رو نمیتونیم ببینیم، بابا تو مردم بوده، خب؟ مردم، من و تو مردم اداره رو بودن، مردم نگارش داشتن، مردم میتونم بذارش کنار. اوکی؟ از شما <تصف> <گرام. بس> شما. <تصف> پسش شما، ا، خواهید دید. پس درست. پس چه وردیایزم؟ هستن، ما به اما به گمونم نیستن، یعنی لپ شدن. با این هما پرسششون رو بفهمید. بفهمید؟ درود بر دوستان باشنده در نشست بس درود فراوان خدمت موبت عزیز و سپاس از گفته هاشون که بسیار آموختیم آی موبت شما در پاسخ یک دوستان گفتین که سکوت در برابر بیرانگر به نوعی بیرانگریه من پوزش میخوام که در واقع پرسش, ها، پرسش های در واقع شاید از متنگات ها اینها نیستش و پرسش بین ما از خودتون آموختیم که بیشتر راه و روش زندگی کردن رو در واقع بیاموزیم به خاطر همین من اینگونه پرسش میکنم. شما در جواب این دوستمون اینگونه گفتین بارها پیش اومده که در برابر افرادی که بظاهر زرتشتی هستن بارها پیش اومده که سکوت کردیم به خاطر به گونه هفت آبروشون. اینگونه که شما میگین سکوت ما در واقع شما به گونه گفتین که انگار سکوت ما مخالف عشا هستش و خیشکاری ما مشخص کردن چهره این گونه افراد هستش آیا من درست متوجه شدم ها ها ها شما رو به این دوستمون یا خیر؟ خب درود میگم به خودت و خانوادت میدونم عزیزم میدونم چی میگی و آ... ببینید سکوت کردن یا گفتن چگونه گفتن و زمان و مکانش رو به درستی برگزیدن اینم خودش یه هنر است من شخصا خودم هم نمیتونم بگم دارای این هنر تمام و کمال هستم اما چیستی آموختم در زندگیم اینه که خیلی وقتا گفتن و باز میگم چگونه گفتن کجا گفتن و به کی گفتن اینا همه اثر میذاره رو نتیجه پیامی که میخوایی برسونی ببین در پیام اینا همه برمیگرده به اون به علم تراکنش. یه پیام هست یه پیامده هست یه پیامگیر هست و یه پیامی که میره و راههایی که میبره خب. گزینش پیامگیر و چگونگی پیام رساندن نتیجه پیام را هم مشخص میکنید این کلیست. کلویست یه زمانی از شما شما دارید در مورد انسان دیگر صحبت میکنید آقا کسی آمد و دروغی گفت دید من یه دروغ بزرگ بود واقعیت نداشت و میخواست منو خراب کنه یا دیگه رو که من میشناسم به گونه آسیب برشم. خب، چکا کنم سکوت کنم پاسخ من نمیتونم یه پاسخ سر راستی بدم چرا یه زمانی از بنابر آن شرایطی که پیرامون داستان است یه زمانی از سکوت بهتر نتیجه میده؟ یه زمانی هست که نه سکوت نتیجه نمیده خب حالا من به این نجرستم که نه نمیشه سکوت کرد باید بگم آقا جان یعنی چیزی هست خب من میام به اون گوشهای شنوایی که برای من وجود داره یا به پیامگیرانم حالا این از راه های رسانه هاست خیشانمه دوستانم حل که من با حرفم بزنم خب وقت که بعد چند فاکتور رو در نظر بگیریم همیشه بر مبنای واقعیات که دشه استوارش کرد چارهی نیست یک اونا در نظر بگیریم و بعد سخن رو به گونه‌ای بگیم که خرابتر نکنه داستان رو ولی آگاهی رو برسانیم خب واجگانم رو درست انتخاب کنیم ولی آگاهی رو برسانیم و بعد سکوت کنم وارد دعوا و به قول معروف اینجوری و اینها نشین اون بگه من بگم اون بگه من بگم من اگه باشم برای نمونه مینویسم یا میگم که دوستان یه همچین چیزی پیش اومده یه همچین من کردم یا یه چیزی پیش اومده و من این, این گونه برخورد رو دیدم شاید در گامای نخست نیاز نداره نام ببره یا حالا. و بعد من میخواستم این آگاهی رو به شما بدم که یه همچین برخوردی هست از دید من این برخورد درست نبود از دید من این یک دروغ است. به این دلیل به این دلیل به این دلیل بعد بذارید به دیگه دیگران خب یعنی یک گام نخست رو بردارید آگاهی رو بدید و خب بیگم اون خودشون میاره ولی اگه زمان بهش بدی و هم اون کس یا کسانی که حالا مورد نظرشون ماست به یک به یک کردار که خاتم پیدا میکنه به یک گفتاره جاهای دیگر همون قدم خودشون نشون میدن. میگم آه آه اون تجربه که من از این سالها دارم این نشون داده برم تو زندگی خودم انسان هایی آمدن رفتن داهای زیادی داشتند و سخنان که داری دید من هم نادرست داشتن و برخی هم شاید حتی به خود من هم ایراد گرفتن از اون آغاز که آقا شما چرا واقعش نشون نمیدید چرا چیزی نمیگید خب اونا هم نمیدیدن که من, من کجاها رو دارم میبینم دیدگاه خودم ولی دیر یا زود ولی سخت و سوز نداره اون میگن دروغ بیفروقه دیگه خودشون نشون میده موضوع مهم دیگر آن هست که شمایی که این دروغ بهتون وارد شده خب این دروغ آمده که به شما آسیب بذاره اگر هدف شما بودید خب حالا چگونه از اون, اون با من چگونه برخورد بکنه که من سلامت روانم و تنم و اندویشم دست مدهد خب؟ اول خودتون رو نگاه اگر شما هم بخواد وارد این بازی دروغ بشید و اصابتون خورد بشو فلان در واقع اون به هدف برخورده شما آرامش رو حفظ کنید در آرامش بهترین راه ها رو گیر بیارید یک گام بذارید آگاهی بپراکنید بپس بشینید بذارید نتجه شو ببینید چی میشه اگر نتچه داد اون نتچه رو پهی بگیدید نتچه نداد بعدی رو بردارید این پیشنهادی که براتون دارم من خودم از این راه ها میرم دوستان دیگه هر کسی بعد راه خودش رو بیاز باید بخار. زنده باشی، پاینده باشید پرسش بعدی ایزن آسا من کدوان کوروش گمان میکنم اومدن پرسش رو بفرمید کدوان کروش بفرمید بایدون روز سراوان دروت. من تابعایی من رو داری؟ بله، بله، تا تمام سخنهای شما رو شنیدم به... و پرسش های یکی تا تن از دوستان و به نگاه اینترنت ما قطع شد و نمیدونیم دیگه چه بود اشکال <تصفح> ندارم، شو... پرسش ها تو بکن، ببینیم بب... بعد اینکه سالیان سالی که از نوشته هاتون و سخنهاتون میبریم و بعد خیلی هم سپاسخزار هستم از شما و همجور درود هم به همه دوستان به اندازه‌ای که زیبا گب زدین که پرسشی رو دیگه تو ذهنم ندارم فقط این که جسارت رو به بنده دادین که وا بخوام این رو مطرح کنم بعد در خصوص این که نحوه سخنان شما با یک راز بقای زندگی انسان آغاز شد که غالبا بر معنای آموزش هستش و نه غریزی و دیگری اینکه زندگی اجتماعی انسان هستش که و در این میان نقش شخصیت های عامل که تحییم کننده, هست، کننده هستند و محوری در پیش برد اهداف های سازنده یک حازم هاست ببخشیدیم من... اه... کلم و کروش پوزش میخوام چون که در نشست های دانشگاه شما پروله ندارید که اه... پژوهش خودتون رو بگید مگر اینکه که استاد بوله... در راستای هم... بله باشه سخنوشون بگن و بعد اگر میاد خب بله خواستم میگم که آره من کوتاه خو می‌کنم سخنمو اینکه در درازای تاریخ ایران هموار در اساطیری و متون ادبی تاریخی مون شصت دیده می‌شَم این که چهره پهلوانی دارن به نوعی تمام کارها به اونا ختم میشه و توانایی آغاز انجام امورات به جمهور فرامعیشتی دارن این پهلوانا دارن برای نمونه اصلا جمشیر داریم رستم داریم و گشت و زرتوش در این میان شخص استاتیریمون یا تاریخیمون یا حقیقیمون زرتوش یادگاری که از خود برای انسان ها به جا میذاره رهیافت طبیعی خود بر خیرتگرایی شه و آزادی پژوهشه که همگان رو به سوی سوت بردن از اندیشه نقد پژوهش و خودشناسی به قلید راهنمون میکنه. من میخوام بیام مسئله سقراط و کوتاه کنم چون قانونمندی اینجا رو یه خود داره به هم میزنه. وقتی اگه پرسشی داره مطرح کن میدانم که پژوهش کردی، زنده باشی و میفهمم که داری چی میگی. Um, ولی اگر به پرسشی میخوایی برسی پرسش رو مترک کن و در یک برنامه دیگرم بعد با امید خدا خودت میایی از دانشت برای دیگران میگی نه هم پیرو به سخنان شما هستش همین نوشته ای که خود وجه هم میدونم گذرم به هر حال همونجور که من خوشحالم پشنودم از این که میبینم شما هم به هر دیگران فرقی هستی که این راه گام گذاشتی و همه ما در این راه هستیم و راه یکیست حالا یکی این جاز یکی اینوره یکی فرقی نداره همه نگاهمون به یه سمت و سپاسکوزارم از چیزایی که گفتی و چون پرسش نداری پس بگذاریم به کسی که پرسش داره و کنه که باز بیشتر بتونیم سپاسکوزارم شبیشون سپاس از شما پسش بعدی رو کتبان بیژن گرامی بر درود موبدی گرامی من بسیار آدم مختلف رو در زندگیم از نزدیک دیدم و سوالم این هست که همه این رو دیدم که مشکلاتی داشتن در زندگیشون کارهای بدی کردن خشب داشتن دزدی کردن کلابرداری کردن قتل انجام دادن. به نظر شما انسان ذات هن یعنی در ذات انسان مشکلی وجود داره, وجود داره و اینه که انسان وقتی که متولد میشه و سن شما بالا میره کارهای ممکنه شروع کنه کارهای بدرو و صد البته این رو هم بگم که حتی در بهترین کالج ها، در بهترین دانشگاه ها هم ممکنه تحصیل کنه نه اینه که بگیم خب حتما در یه جای بدی، بد اجتماعی بوده که این بلا سرش اومده، این یا بدی شده خود جنبالی آیا مشاهده کردین کسی در همون محلی که شاید تشریف دارین کسانی باشن که هیچ خطایی نکردن تو زندگیشون، هیچ اشتباهی نکردن و آیا دیدین؟ و اگر هست، یعنی مشکل داره ذات انسان، این از کجا ناشی میشه، منشه این کجاست، چرا انسان اینطوری هستش؟ نمیگم, چرا، اه، نمیگم اه، راه حلش چیه، میگم این علتش ریشش از کجاست، سرچشمش از کجاست، بعد این رو زرتوش در کجا میگه، در کجا گفته شده، در کجا این رو بهش اشاره کرده، سپاس، خب سپاسگزارم البته این پرسش شما پاسخش پاسخ در واقع انسان شناسی جامعه شناسی است و پاسخ کوتاه من اینه که نه به نظر من انسان انسان نرمال که مشکل دست کم حالا فیزیکی که نه به معنای اینکه دستی پایی یا جایی مثلا به درستی کارآمد نباشه بیشتر اون سلسلیه در واقع مغز اگه بخوایم بگیم شاید اگر مشکلی با اون نباشد که از برساند نا انسان در زرش سرشت خودش و به خودی خود بدی رو نمیشناسد اصلا حالا اگر انسانی رو ابتد این آزمایش شده بو آدم میتونه بره از نتایج آزمایش ها رو توی دانشنامه ها بخوند اگر به راستی بشه کسی رو در یک محیطی از کودکی گذاشت از زبانی که دنیا میاد که هیچ انسان دیگری دوروبرش نباشه تأثیری از کسی نگیره و بعد بخواهیم مثلا اون انسان رو بپجروهیم که خب وقتی که بزرگتر میشه چرا رفتار از خوش نشون میده چین چیزی که نمیشه و تازه اگرم حتی انگارشم بکنیم که یه همچین چیزی میتونه باشه به نظر من اون انسان مانند هر جاندار دیگه فقط آن, آن ریشهی ترین چیز مسئله زنده ماندن هست دیگه مسئله تنوزای بقاست و برای ما انسان هم حالا اگر اون مسئله در واقع پیشرفت مغزمون و مسئله اینا بذاریم کنار که اینها با اسم شهن گفتگوار با هم داشته باشیم ما هم مانند جانوران دیگه مسئله بقا برمون مدجایه و تمام من خیلی از مسائل دیگه هم که امروز بین انسان وجود با میاد باز در نهایت به همون برمیگرده زنده ماندن انسان ناغاه انسانی که هنوز از به سر میبره و به بلوغ فکری نرسیده اینجوری فکر میکنه دیگه من چه کنم که من زنده بیشتر بمانم؟ بعد حالا تمام چیزهای زنده کشم برمیگرده که آه چی میشه او نمیدونم مرگ چگونه است و چگونه میمیرم او؟ البته مرگ و این داستانش فرد داریم که برای همه هست ولی منظورم نیه که ذات کسی یعنی نظر من بد نیست بعد میشه چگونه میشه که اونجوری بشه برمیگرده به همون در واقع باورهای نخستینی که گفتم ببینید بر اساس دانش روانشناسی میگن که انسان تا هفتای سارگی هفتای در درصد منشش و شخصیتش شکل میگیره. بیست اصار بقیه هم در ادامه زندگی وجود میگوند خب شاید خیلی چیزهای ای که آدم فکرش نکنه یک،, یک کنش و واکنش ساده مادر یا پدر یا اون کسایی که برحال اون باورهای اولیاره میگن در منش منو شما کاشتند یا میکارند یا ما میکاریم چه برخورتهایی کرده باشه و از اون برخورد چه تصویری و چه باوری در من ساخته شده باشه و همون در من بزرگ میشه اگر جوری دیگری چیز دیگه نیاد و اون کنار نزنه و جای نشه این باور ها هستن که میان و بسیار رفتارهای ما رو میسازن و بعد میاییم میرسیم تو جوامه میاییم تو آموزشگاه ها دوستان و دویرستانه ها را تو هر جامعه آمزشک که وجود داره. و و و مجموعه اینا میسازن. شما تو همین جامعه که حالا دارین می‌گین زندگی میکنم خب همه جا هست. تو همین شهری که بند زندگی می‌کنم الان همین میگن نمیدونم مثلا جرم و جنایت بیشتر شد. یا جوانهایی که میان اصلاعی به دست میگیرن و نمیدونم فلان میکنن بیشتر شدن. چرا آچه این اینا هم برای جامعه مطرح بوده و بعد باز میگرده بسیاری به همون مثلا دوران کودکی که فرزندان و کودکان رو باید شرایط در واقع پرورشش و آموزش پرورشش نجوری وجود بیارین که اصلا فکر و مثلا سیستمشون اصلا به اونوری نره که بخوان یه روز براحتی بیان مال کسی دیگر بگیرن یا جان کسی دیگر بگیرن این همه برمیگرده به آموزش اجتماعی و آن چیزی که ما در اجتماعمون فرام میگیریم. یا, یا اجتماع خانواده یا اجتماع شهر و کشورمون اجتماع دینی مونه، اجتماع فرهنگی فرهنگیمونه و تا مستاری رو تأثیر میزن. همه اینا تأثیر آن چیزی که ما از بیرون میگیریم و آن چیزی که در کودکی در واقع پایه‌های ما رو ساخته، همه اینها قابل بابل متا انرژی میبره زمان میبره داستان تغییر و داستان های کردن سخته وقتی که هرچی که این پوستها ها سختتر میشه اینجوریه که تمام هستی اگر اینجوری نگاش کنید به مانند یک جریان روان و سیاری داره میره هیچی تو اینجا شک نداره این میاد یه خواست میاد تو کار این خواست میاد و یه چیزی رو میریزه این یه بخشی از اینو میگیره میکنه توی یه چیز بهش میگه تعریفش میکنه تعریف یعنی چی یعنی اینکه کرانمندش میکنه محدودش میکنه شک بهش میده هر چیزی رو ما میکنیم توی ظرفی به شکلی بهش میدیم وقتی که یه چیزی رفت زرف و ظرف و شک شد و سخت شد اینو دوباره برگردوندن و سیارش گردن و روانش کردن انرژی زیادی میبره برای همینه که آموزش و پرورش نخستین بسیار بسیار مهم هست که یک انسان و یک جامعه چگونه بار میاد انسان به خودی خود نه خوب هست نه بد اینا رو از پیر میگیره. امیدوارم این پاسخه من را پرسش بعدی با سپاس فرابان از شما مبد بزرگوار دیگه پرسشی ندارن دوست ولی من میخوام به نمایندگی از دانشگاه سفندتا و آقای مرداد غنبری پوزش میخوام حسن اجزه این پرسش پایانی باشه که دیگه پایان بدین دیگه آرامورم و فرماین مرد در شما صحبت گلامی خیلی خوشبخت تستم که از نزدیک دارم با شما صحبت میکنم و چهرتون رو میبینم من سوالی که داشتم سوالم این بود که آیا بدی؟ در اثر کمبود خوبی هستش یا اینکه نهادینه هست در وجود انسان یا آیا قریزه هایی که در وجود انسان وجود داره مثل خشم یا چیزهای دیگه آیا اینا نهادینه هستش یا در اثر کمبود مهربانی محبت شفقت دوستی هستش اینها متشکرم Uh, سپاس گزارم uh, نه همونجوری گفتم ببین نهادینه وقتی ما میگیم نهاد یا اون ذات سالاتی نامشو بذاریم هیچی با ما نمیاد ببین ما یه سری با دی ان ا ژنامون که اینا بیشتر هم شکل مثلا تنبی و فیزیکی ما رو میسازن خب حالا چقدر از اینها روی شکلی به منش ما در آینده تر تاثیر میذارند و پاسخش از دانش گرفت منم پاسخ درستی ندارم در این زمینه ولی خب گفتم بقیهش دیگه از همون همون که از مادر می بیرون و شیر آغازین رو میخوریم، آغاز میشه. و با رفتارهای پیرامونیان با ما دانه به بدنه مانند یک پازل کنار هم گذاشته میشه. من و می آجه. پس نهادینه بودن در واقع باز برمیگرده به اون آن چیزی که ما از بلا پس از زایش در واقع تجربه میکنیم در زندگی و به شکل های مختلفی میاد در ما مثل خشت همجی رو هم میشینه و این خشتها ها پایه رو میسازن آری مهر و عشق و خوبی جایی که باشند خود به خود جا برای بسیلا اون پاد خودشون یا متضاد خودشون خب کم میکنند آره زمانی که مهر نباشد وی مهری است که خود رو نشون میدهد خب اون بسیلا پیامدهاش هاش هم نادرست میشهد خب این دیگه یک فنومن پدیده شناخته شده است که بسیاری از انسان‌هایی که توی آزمان‌های کوناگون دست به کارهای نادرست می‌زنن، آسیب می‌رسانند به دیگران، مال دیگران می‌برن و،, و جرم جناعیت تا رسم‌ش رو بذاریم، خب اینها بیشتر اینها دست کم کسانی هستند که آموزش پرونش خوبی نداشتند، محیط‌های خونه‌شون محیط خوبی نبوده، پدر خشنی داشتن یا نمیدونم کتک میخوردند یا دروغ میشتیدند و و و خب اینا اون پایه هاشونو رو ساخته و اینا دیگه اون, اون مهر در رو ساخته نشده اون،, اون پیوند راستین رو با در درست و سازنده رو پیدا نکردن با محیطشون و اطرافشون خب اینها به شکل های خودشون رو نشون میدن با خش میزنن بیرون با انتقام کشی از جامعه میزنن بیرون و همه اینا هم برمیگرده این من وقت داره باجهش رو میگم بعد باز همه رو با آینده باز سپر مسئله توجه مدره. یک یکی از نیروهای اساسی که جهان رو میافرینه نیروی کشش یا توجه هستش همون گفتم وقتی که یک یک ماده سیالی داره میره اگر این رو ورداری توجه حالا باش ببینید توجه. یعنی این درون یه چیزی بذاری این شکل میگیره. خب؟ توجه چیزیه یعنی منو ببینید. ها؟ توجه چیزیه که با در همه آفریدها هست. و در ما هم هست. به ویژه در ما انسان ها. خب؟ همیشه میخوایم که این نیرو به ما بیاد. به ما خوراک بده. به من نگاه کنید. من رو ببینید. ها؟ من خودمو نشون بدم تو جامعه. من به جایی برسم. این نیرو خوراک میده. خب. حالا. راه درست و شیوه درست اونه که اون خوراک گیری، اون نیروی توجه رو ما از جایی بخوایم بگیریم که پاک باشه. اونم ناب باشه. اون نیروی توجه رو ما اگر بتونیم از یک سرچشمهی بگیریم که اون سرچشمه کسی بهش کنترلی نداشته باشه و همه قابل دسترسی باشه و پاک باشه. من اسمشو میذارم اهورا. باید که مطمئنگی اسمشو بذاره. اون آن هستی بیدر بیکر. آن چیزی که هست و درون ما هم هست. اینجاست که مسئله درون میاد، درون نگری و اینا نمه معنای تو خود رفتند. بلکه میشه گفتش که توجه رو از نیروی درون بگیریم. از اون من برتر اسمش رو بذاریم بگیریم. هایر سلف با قول مارف. حالا اینا دیگه نام واجه هست دیگه خب. تا زمانی که توجه رو از اون بگیریم، خوراکمون رو از اون بگیریم نیازی به توجه به دیگران نداریم و با خوبی میتونیم قول معروف به بالیم خب ولی به ویژه در انسانهایی که توجه درست و مهرامی ازشون گرفته شده و صدمه و آسیب دیده این آدما بیشتر به دنبال توجه هستن بیشتر کسانی هم که به بدی تو جامعه رو میارند و دیگران را رو آسید میرزند یکی از نیازهای زیر و و درانیشنه که من رو ببینید به من توجه کنید. حتی برای خیلی از اینا رفتن به زندان یه چیز مثبت داره. برای که میبینه بهش پلیس اون گرفتتش. چه نفر بهش توجه کرده. خیلی ساده بگم خب. اینا باز برمیگرده به اون کمبود نیکی و کمبود مهر. مهر پایه و اساس. بی خود نیست که درون تاریخ هزاران ساله انسان مهر جایگاه وارای داشته مهر من میگم باز بر به مهر و مهر پرسی بذاریم کنار مهر به معنای نیروی توجه نیروی کشش مثبت و سازنده و در واقع پیوند زننده همه هستی هم نیکرد دوستان برای همه تون آرزوی روزها و شبهای خوبی دارم مهر همشه در درتون باشه مهر شما که در در من هست امیدوارم که مهر من به شما هم برسته و امیدوارم آنها هم که آنها ببین هر کسی هم که به گونهی به دروغ رو میاره و به آسیب رسولن به دیگران اینها خودشون آسیب دیدن یک جایی آسیب آره این خوشگاری همیشه شما هم نیست که به هر کسی ما بخوایم کمک کنیم ولی اول شاید فهم این مطلب به کمک کنه که به دیدگاه دیگری به این کسان نگاه کنیم و شاید هم یک گاهی وقتا یک مهربانی بیشتر بتونه خیلی از این آسیب ها رو در این انسان ها هم به التیام به مهر با شما باشد و اورام ازدار یاری آودتون هر جا که هستید جهان به نیکی نیاز دارد و ما هم امیدوارم بتونیم پیام نسانان اون باشیم شب همتون خوش و من خدا نگهدار میگم اگر برنامه گزاران و کار کان دیگر اید بگید در خدمتی مگر نکته دیگه شب خوش بگیم و بگیم سراغازه نگیم سپاس از شما ساده بزرگوار من البته دوست داشتم که شما یک پیامی برای کسانی که نیک آینی رو برمی بدید اگر خستی نیستید این پیام رو هم به ما بحر ببریم. صد در صد. فکر کردم که همه پیام هم برای شماست. <تصفح> نخواستم که خوش آمدید همه تون. ببینید آنهایی که منو رو میشناستن خوب میداند. احمدت این گفتن ندارد اما برهاد خب من اکنون می کردم شاید بگم 20 سال گذشته زندگی گذشته از حالا مسال زندگی خاانوادییه شخصی رو بذاریم تو کنار و روی این داستان رو گذاشتم و روز نخستم باورم بریم بود و هست که این رو باید گسترش داد نیکی رو که در خانه نباید نگشته داشت درش بست خب ولی همهتون هم میدانید آن چیزهایی که سبب شد آن دلال تاریخی اجتماعی آن چیزهایی که در تاریخ ما گذشت آن دیگه نیازی به گفتن و باز کردنش هم دوانش هستنه ایچی همتونم می دونیم به جایی جامعه زرتشتی داشتی رو که در ایران و در جهان خب کوچک شدیم صدم دیده بودیم ضربه دیده بودیم در کنار که به هر حال یک چیز رو نگه داشتیم و تا به امروز رسونیم اما خب این به این معنی هم نیست که خب حالا که شرایط دگرگون شده باز بخواهیم در خودمون یه داریم. اول باید خودمون بفهمیم که چه گوهری داریم و بعد اون رو به دیگران هم نشون بدیم. هر کس که آمد و به درستی آمد. خوش آمد. آمدن ها خب انگیزه های گوناگون داره در انسان ها. همجای گفتم در اول کار برخی از به خاطر اینکه از یک چیزی دور بشن و به قول وسی بعدشون اومده بخوان به یک چیزی دیگه رو بیارن خب اون در کم یک انگیزه آغازینه و حالا دیگه به اونان های پردازم ولی هر کس که این رو در واقع دید فهمید بینش رو پیدا کرد. مثلا ببینید این بینش است که ما نیاز داریم. خب؟ و همه اینا امیدوارم بتونه با افزایش دانشمون بینشمون, بینشمون هم زیاد خوده توی دستان. موضوع فقط یک, یک واجه رو خودشون گذاشتن رو خودمون گذاشتن نیست. آن من یک بهدین هست. خب این یک کلمه هست. یه واجه هست. وی زرطشتی خیلی هم خوب. خب بعدش چی؟ چی از خودت نشون میدی؟ اون کرده هاست که نشون میده یا گفته ها و کرده ها که ما چقدر اینو دریافتیم و چقدر در واقع بهش پای بندیم تنها میار و سنجه و شاخص داوری هم اگه بخوایم بگیم تنها همینه نه چیز دیگری پیام من همون پیام راستی و نیکی است. همون پیام از جزرتاشت است همون پیامی که خودم تلاش میکنم که در پیش باشم خیلی همچنین میگویند که ای بابا خوبی که در این جهان به جایی نمیرسه این همه انسانهای بد نمیدونم دارن چنین میکنند و چنان میکنند خوبهام خوبها همچنین همچنین همچنانند هم. من, من چنین نمیبینم برای که انسانی که به قول دوستمون نهادش تنین باشد و خوب باشد اون انسان خوشنهاد و خوبنهاد از دروغ خودش بیشتر آسیب میبیند تا دیگری برای اینکه بر بر یا علی و ضد در خودش داره عمل میکنه پس نهادمون رو درست بکنیم نهاد درست داشتن و نیک بودن به معنای این نیست که بزاریم دیگران به اون آسیب برسونند فروتن بودن با ببخشید تو سری خوردن فرق ارم خب، راستی و نیکی هموچو گفتم باید بتونه راسی و نیکی رو هم نگه داره و ازش پدافم اونا خب سازکارهای خودشون میخواد ولی به هر روی پیام من برای همه شما پیام خوشامد است پیام نیکی است و یک کاری هم که بکنید دوستان از گروه گروه شدن و از جدایی ها دوری بکنیم خب Uh, میدانم که بر روی همه با همه نمیتونند بسازند یا از دستگم از دید انجام کار خب uh, ولی از uh, گروه بندی هایی که بتونه آسیب برسونه به کل هدف و به کل راه دوری بکنیم uh, یک سری گروه بندی ها طبیعی است هر کسی یا در شهر خودش کار میکنه یا در میان گروه های سنی داریم گروه های دیگر اجتماعی داریم اینا به جای خود ولی اگر بیایم و با بخش بندی و گروه بندی که بخوایم بر علیه گروه دیگری باشیم یا بگیم نه من فقط درست فهمیدم من فقط درست میگم اینها، آسیب می‌رسند. یکی از تریانی که من میگم اینا از باور میاد ولی همیشه میگم که اینهایی که من به شما میگم اینا دریافت برداشت منه. و هر کسی هم باز میگم این دید منه. هر کسی هم اومد به شما گفت که من فهمیدم که برا، برای نمونه زرتشتی گفت و آن چیزی که من میگم نوشتم اینها تنها درست است و جزی نیست. کمی تعدید کنید با عدیده تعدید بینگرید چون چنین انسان و انسانهایی به نظر من باز به اون کمال یا حال به, به بلوغ فکری که باید برسادم نرسیده خب این میشه گفت حالا به عنوان پیام امشب و امروز از من بپذیرید دارم که به زودی با هم بتونیم یدایی داشته باشیم و جپی بزنیم و دردل کنیم خوب پس از با آرزویتنندستی تندرستی دیرزیوی و به زیوی در پناه عرمز بخشاینده مهربان نشست رو به پایان میرسونیم بسیار بهره بردیم بسیار سخنتون زیبا و شیوا بود و همه ما از شما سپاس گذاریم امیدوارم باز هم شما رو ببینیم خدا سپاس می خواهیم کرد و یک اشم به هم میخواییم و پایارش میدیم اشم به و اجتماستی روشتا هستی روشتا احمای یدشای و اشتای بدرود ایزار. سپاس از شما و دیگر باشندگون بدرود تا نشست و دیگه. بدرود و سپاس. بدرود دا سپاس. بدرود سپاس.